اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین بحث مالکیت فکری جلسه چهارم در رابطه با کسانی که قائل به عدم مالکیت فکری هستند و حقوقی که مترتب بر آن است ادله ای رو بیان کرده بودند دلیل اول عبارت از این بود که مخالف با قاعده سلطه مشتری است قاعده سلطه یا تسلط کسی که مالک شیئی شد انواع تصرفات رو در اون شی می تواند بکند حالا اگر بگیم تو نمیتوانی چاپ بکنی نشر بدی اقتباس و استنساخ بکنی بدون اجازه این برخلاف قائل سلطه است و قائل سلطه میگه شما چه حقی را داری و لازم نیست اجازه بگیری دلیل دوم این است که بر فرض که مالکیت فکری مورد بنای اغلا باشه اما شاره امضا نکرده است و تا بنای اغلا مورد امضای شرعی قرار نگیره او حجت نیست ولو امضاع اشاره را بخواهیم از راه عدم ردع و سکوت او استنتاج و استخراج بکنیم چون اینها در زمان معصوم نبوده تا ما ببینیم آیا ائمه اینو نفی میکردند یا سریحا تعیید میکردند یا با سکوتشون از باب تقریر تایید میکردند لذا چون امضاع شرعی برای ما ثابت نشده است نمیتوانیم اینها را مشروع بدانیم این حقوق مالکیت فکری را که این هم بحثش گذشت اونطور نکته ای که در اینجا هست این که بعضی ها گفته بودند که این که به عنوان شرط ضمن عقد بعضی ها گفتن می شود همینطور نمی شود بعضی نقد کرده بودند که این شرط زم عقد ممکن نیست چرا به خاطر این که این مالکیت فکری که مورد بحث قرار میگیرد این در مثلا ای که شده از کتابی رو به کسی فروخته اند اینکه قرار میگیرد و شارع میفرماید مثلا که نمیشود مگر اینکه در ضمن عقد قرار بگیرد بعضو اشکال کردن که این حرف درست نیست چرا چون حقوقی که برای مالکیت در نظر گرفته میشود اینا جزء عهد حساب میشن نه باب عقد ما به عنوان شرط ضمن عقد اینا قرار بدیم قوتن دلیلش هم این است که عقد پیمانی است بین دو نفر که با شرایطی توافق می و قراردادی می بندند. در صورت که عهد پیمانی یک جانبه که طرف دوم ندارد به نظر ما این حرف و این صورتن تام نیست که بگیم عهد یک طرفی است و عقد دو طرفی است کلن اگر فرق بین عهد و عقد را به صورت بخوام بیان بکنیم تا جواب این شبه معلوم بشود این است که عهد دو تا معنا داره معنای مستری یعنی تعهد دادن معنای اسم مستری یعنی تعهد داده شده عهد دو جور داریم ما بعضی اهدا دو جانبه اند یعنی من عهد میکنم برای تو فلان کار را بکنم در مقابل اهدی که تو برای من بکنی یعنی شرط میگذارم گاهی مقا عهد یک جانبه است احد یک جانبه هم خودش دو صورت داره. گاهی دو تا اهد مستقل است من یه چیزی برای شما احد میکنم شما پیش خود چیز رو احد میکنی برای من این عهد یک جانبه است. گاهی مقا نه. دو تا عهد است. ولی این دو تا عهد مرتبط با همند. یعنی من برای شما چیزی را عهد کنم چون تو برای من چیزی را عهد کردی و رو شرط نگذاشته‌ام. اما منشأ عهد من این است که چون شما در مقابل برای من چیزی را عهد کردی، منم برای شما عهد میکنم. دیگر اینکه اهد عهد اقسامی دارد بعضی اهدا عامن میان خدا و انسان بعضی خاصن مانند عهد میان خدا و علما بعضی اخستن مانند عهدی بین خداست و انبیا دواره گاهی موقع بعضی اهدا خاصن به معنی خاص به کار میبرن مانند عهدی که در مقابل نظر و قسم هست انسان ما این عهد میکند چیزی رو با خدا گاه موقع نظر میکند گاه قسم میخورد گاه موقع عهد عهد متقابل است مانند عهد مردم با مردم هنگ قسم ما عهد داریم اون کلمه عهدی که در قرآن آمده است دو جور است بعض کان آم که <مَسْئولا> اضافه به کسی نشده بعضی اهدا خاص است بله عهد الله اوف به عهد الله اوف به یا به عهد هم هان. کلمه عهد به هم اضافه شده که معنای خاص دارد و عهد در رابطه با عقد اگر بسنجیم رابطه عامه خاص مطلق می شود عقد امر طرفه ای نیست طرفین لازم دارد موجب و قابل حالا در باب بی می شود بایع و مشتری در باب اجاره می شود موجر و مستعجر در باب هبه می شود واهب و موهوب له و الی اما عهد معنای عام است گاهی موقع طرفینی گاهی موقع یک طرفی ای. پس اینکه این گفتن عهد یک طرفیست و عقد طرفی نیست این حرف تام و صحیحی نیست برخلاف خلاف کلمه عقد عقد حالا فرقش با عهد چیه اول عقد دو قسم داریم عقد اعتباری عقد تکوینی عقد اعتباری همین قراردادهایی است که مردم میبندن تعهود که نسبت به هم میکنن عقد تکوینی دو قسم خودش یا منطقیست که جمله جواب شرط گیره خورده به جمله شرط این یه عقدیست تکوینی در رابطه با دو قضیه انتظرب ازرب عقد ایمانی آن است که اون چیز را که با ذهن فهمیده ایم با دل بپذیریم و ملتزم به او باشیم اینو میگن عقد تکوینی ایمانی مجموع عقد سه قسم داد خود کلمه عقد سه جور استعمال میشه گاهی مقا مستر است یعنی گره زدن گاهی مقا اسم مستر است یعنی گره زده شده گاهی مقا به معنای معقود هست چیزی که مورد گره زده شدن واقع شده مثلا مارجی که من در مقابل خودکاری که کسی دیگری به من میخواد بده به اینو میگران عقد و معقود است. از طرفی عقد دو تا اصطلاح داره گاهی ما عقده در مقابل ایقا است گاهی مقا عقد میگن در مقابل شرطی است که ضمن عقده است از طرفی عقد مواردی دارد گاهی موقع عقد بین دو نفر بسته میشود شود گاهی عقد بین دو تا دولت بسته میشود شود گاهی عقد بین فرد و دولت بسته می شود اینا موارد سگانه عقد از نظر نوع و خصوصیت هم عقود پنج قسمند بعضی اقدار لازم و مثل اجاره و بی که هیچیک از طرف حق نداره او رو به هم بزنه و نفیش بکنه. بگه من نمیخوام. بعضی اقدار جایز و طرف مثل وکالت یا ودیعه. شما سو وکیل کرده من منصرف شده میتونه بگه آقا دیگه شما وکیل من نیست. یا اون آقایی که وکالتو پذیرفت میتونه اول به پذیرفت بعد بگه آقا من دیگه نمیخوام وکیلی شما باشم اشکال نداره. ودیه هم همینطور امانت پیش کسی زیگوشدی یا آقا نه امانت همون پس بده، اشکال نداره. یا طرف که امانت شما قبول کنه میگه دیگه نمیخوام امانتت رو نگه دارم. من گفته بودم یه سال نگه میدارم ولی نه، نمیخوام، میخوام پس بدم، هیچ نداره. عقد گاهی مواقع از یه طرف لازمه از طرف دیگه جایز مثل رهن. آن این راهن داریم یه مرتهن از طرف راهن جایزه چیزی رو گروپی شما گذاشته است اون آقا مرتهن است خب این راهن که مال خود دست مرتهن داده است چیز رو مثلا قرضی گرفته در مقابل گروی گذاشته که طرف مطمئن بشود خب حالا آقایی که مرتهن است مادام که راهن راجعه نکرده است می‌تواند این مال رو پس بده بگه نه بیا بگیر نمی‌خواد بیا مال منو بده اما آقایی که رهن گذاشته است باید ملتزم باشه یا در باب هبه اون کسی که هبه می‌دهد باید ملتزم باشه به هبه‌ای که داده اما اون کسی که هبه گرفته است می‌تونه هبه رو پس بده بگه نه نمی‌خوام هبه شما رو نوع چهارم عقدی که در یه حالتی لازمه گاهی موقع قا در حالتی دیگه میشه جایز مثلا در چهار مورد جایزه بله در چهار مورد لازم می شود ولی بله و اصل هبه جایزه یک در مورد این انسان به رحم خودش چیزی هبه بده دیگه نمیتونه پس بگیره دو در اونجایی که هبه معوضه باشد در مقابل چیزی گرفته باشی سه جایی که هبه به همسرت کرده باشی چهار اونجایی که چکسی که جنس رو که هبه مصرف کرده و از بین رفته الان چیزی دیگه موجود نیست بله در این موارد دیگه هبه میشه لازم شما نمیتونید ها رو به هم بزنی و بگی من میخوام از هبم هم بکنم نه این جایز نیست خب از این توضیحات و تقسیم بندی هایی که بیان شد معلوم شد که نخیر اینطور نیست که عقد طرفهینی باشه عهد طرفی رابطهشون نیست بلکه رابطه اعم مطلق دارند که هر عقدی عهد حساب می شود اما هر عهدی بله عقد حساب نمی شود خود عهد که گفتیم اقسامی دارد که اقسامش ذکر شد و مورد اشاره قرار گرفت اما دلیل سومی که مخالفین آوردن بر اینکه مالکیت فکری مورد تایید شارع نیست این است که میگن این منافات داره با اون ادللی که بیان میکنن که علم قداست دارد و انسان علاوه بر اینکه به علم احترام میگذاره نباید او رو کتمان بکند باید علنی بکند و او رو پخش بکنه و نشر کنه و در اختیار دیگران قرار بدهد لذا چون علم دارای قداست است نمیشود مشتری رو من کرد از اینکه بگیم در هنگام نشر چاپ اقتباس و استنساق امصال اینها باید بری اجازه بگیری و اون طرف هم فلان فران مقدار پول بده تا بد اجازه بدم قضا اگر ما بخوایم این حق را معتبر بدانیم باعث می شود که آثار علمی حبس بشود علم مکتوم باقی بماند در حالی که خدای متعال نهی کرده از این در سوره بقره آیه سد و پنجاه و ما این شنین میخوانیم که ان الذين يكتمون ما انزلنا من و والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم الذين اون کسانی که کتمان میکنن اون چیزایی که ما نازل کردیم یعنی بیانات خدا را و خدا را هدایت را بعد از این که اون رو بیان کردیم برای مردم و فرست دادیم برای مردم در کتاب الهی اگر بعضی بخوان این بگنات ما را و هدایت ما را دستورات و برنامه های ما را بخواهند کتمان بکنند اینها کسانی هستند که هم خدا لعنت میکند اینها را یعنی از رحمت خدا بدورند هم لعنت کنندگان پیغمبران اولیا بندگان صالح خدا اینها را مورد لعن قرار خواهند داد و اینها از رحمت خدا دور خواهند بود پس بنابراین این اگر ما بخوایم یه حق انحصاری به وجود بیاریم برای کسانی که محصول فکسی رو پدید آوردن این به منزله کتمان علم حساب می شود و این مخالف با نس قرآن کریم است. و اگر کسی اشکال بکنه که آقا این آیه قرآن شعن نزولش چیز دیگری است این مربوط به مذمت اهل کتاب یعنی یهودیا که علمای یهود بعضی‌ها نمیگفتن احکام کتاب را پول میگرفتن تا بگن ها به قول معروف بر منبر رفتنشون و سخنرانیشون و تبلیغشون شک میذاشتن پول میگرفتند و قرآن داره مذمت میکن اینها رو که اینا چرا حقایق الهی رو کتمان میکنن و که یکی از اون حقایق عبارت از, از نشانه های پیغمبر آخر زمان که در اونها آمده در اون کتاب ها که پیغمبر آخر زمان پدرش کهیست خانوادش کهیست خصوصیات جسمی روحی روانیش چیست و مربوط به اونه این دیگه ربطی به بحث ما ندارد که ما میخوایم بگیم آثار علمیش را کسی میتونه شرط بگذاره که اگه بخوایید چاب بکنید از من باید اجازه بگیرید و چیزی به من بدید. خب پس این اصلا با رب... بحثمان نباید ربطی داشته باشه. جواب دادن نه. گفتن از این آیه به آیات استفاده میکنیم. یا حتی از بعض از روایات که آن که کتمان علم مطلقا چه مربوط به کتب آسمانه باشه یا غیر آسمانی. چه مربوط به نشانه‌های های پیغمبر آخر از زمان باشه چه غیر او باشه اصلا کتمان علم از طرف عالم حرام منهی عن هست مثلا روایت داریم که می‌فرماید از پیغمبر اکرم است در کتاب شریف کافی من سئل عن علم یعلمه فکتم الجما یوم القیامته بلجامن من نارن. از رسول مکرم سوال شد آقا اگر کسی را که عالمه به علمی است از او سوال بکنند چیزی را نسبت به اون علمش او کتمه پنهان کنه و نگوید پیغمبر فرمودند در روز قیامت یک افساری از آتش بر دهان و گردن او خواهن گذاش این کنایه از شدت عذاب و قبه است که این فرد مرتکب شده است که علمش رو نمیده به کسی کتمان میکنه خب این یک که در شرح اصول کافی ملا ملاساله مازندرانی جلد یک صفحه 189 یا روایت دیگری داریم در همین شرح اصول ملا ساله جلد دو صفحه دیرسوسی و پنج اداده هرت البدع فی امتی فلیو العالم و علمه و من لم یفعل فعليه لعنت الله اگر بدعتها و های خلاف شر در امت من آشکار شد عالم باید علم خودش را اظهار کند و حقایق را بگوید و معارف دین را بین مردم بیان و ترویج بدهد و نشر بدهد و اگر عالمی این کار را نکرد و به وظیفه اش عمل نکرد لعنت خدا بر اوست یعنی از رحمت خدا دور است از رحمت خدا دور بودن این دو عذاب شدن و کسی مورد لعنت خدا قرار میگیره گیره معلومه کار حرامی کرده پس از این لعنت خدا و عذابی که وعده داده شده معلوم است که چنین چیزی شریعت ندارد کسی محدوده قرار بده برای علم خودش و که دیگران استفاده نکنند؟ خب اینم از این پس روایات هم داریم مرحوم امامم در تحریر و جلد دو صفحه 625 و25 همینطور چرا ما قالب به حقوق مالکت فکری نیستیم؟ این موجب، عدم ترویج ارزش‌های دینی میشه این باعث میشه که مردم در جهالت و عقب مندگی باقی بمانند بله و از طرفی میگن ارشاد جاهل واجب است انسان باید جاهل رو ارشاد بکند و اگر کسی برای حق فکری خودش مالکیت قائل بشه و برای او حقوقی قائل بشه بعد و دیگران من کنه بگه از من باید اجازه بگیرید یعنی باید به من چیزی بدهید تا بتونه اجازه بدم اینو نشش کنید پخشش کنید استنساخ کنید اختباس بکنید عکس بکنید و برای دیگران نقل کنید این خلاف دستورهای است خلاف وجوب ارشاد جاهل است نه این پس جایز نیست و شاره چنین را امضا نکرده است خب پس بنابراین این میتوان گفت که اگر ما بخویم قائل به مانیکیت معنوی بشویم هم با رسالت و قداست علم سازگار نیست و هم با عدلدهی که نهی از کتمان علم کرده اند که مجموع این دوتا رو هم بگذاریم علم. آنقدر قداست دارد که نباید مورد ملکیتی کسی واقع بشود و مسائل علمی نباید در اختیار و انحصار بعضی از افراد باشه و اینها شرط و شروط بگذارند و مانع نشر و انتشار حقوق معنوی بشود این استدلال سومی است که کسانی که مخالف با حقوق مالکیت فکری هستند اظهار میکنند ولی به نظر میرسه که این استدلال هم تام نیست چرا به چند دلیل اولا درسته که اسلام برای علم و عالم ارزش خاله یه منزلت خاصی قبول داره برای او ولی اینکه پول گرفتن و کسب درآمد کردن با امور مقدس و با ارزش حرامه و جایز نیست، نه ما از کجا در بیاوریم؟ به چه دلیل ؟ نه اینکه انسان فقط از درآمدش باید در اموری باشد که جنبه معنوی و قداست نداشته باشند. و به طور کلی هر چیزی که دارای ارزش معنوی است معامله کردن با او و خرید و فروش مده خرید و فروش قرار دادن او، و شرطش بر او گذاشتن، این حرام است یک دلیل قاعده کلی اینچنین ما نداریم لذا این آیات یکون روایات که خونشون مراسم معارف دین است یعنی بحث توحید و اخلاق و احکام دین انسان معارف دینی را نباید به دیگران بگه چه در نوشته آمده باشد چه نه چه اصل نوشته را معامله کرده باشد یا نه معارف دینی نمیشه روش پور گرفت نمیشه روش شرط گذاشت در حالی که بحث ما وسیع تر از این حرف است. بحث ما سر معارف دین نیست هر کسی یک اثر فکری دارد حالا میخواد اقتصادی باشه تجاری باشه هنری باشه صنعتی باشه حالا در هر موضوع اختراعی کرده است آیا این کار محصول فکری خودش رو میتونه مشروطه به شرطی بکند یا نه از مضمونش با آیات قرآن فرق میکنه. چرا چون کتمان علم چیزی کسب درآمد از طریق کارهای علمی امرون آخر چرا به خاطر اینکه اون چیزی که مورد نهی آیه قرآن و روایت پیغمبر قرار گرفته کتمان علم است نگفتن نباید از طریق فعالیت‌های علمی درآمد کسب بکنید نه نگفتند و به عبارت دیگر اگر گفتن کتمال علم جایز نیست لازمش این نیست کسی که صاحب یک اثر علمی است از حقوق مادی خودش صرف نظر بکنه یا مردم ملزم به رعایت حقوق اونها نباشند نه او سر جای خودشه و اینم یه حقی سر جای خوش تنافیه با هم ندارند چنان که اگر نه میکنند از احتکار میگن احتکار نکنید شئی حرام است معنیش نیست که یه شئی که احتکار شده ما رایگان بگیریم به این مردم پخش بکنیم نه عرضه بکنید چون این کار بودن حرام است نه خیر. این درسته که حرام است اما در این حال مال مالیت داره مال صاحبش است سالسن همون قرآنی که کتمان کرده نهی کرده گفته نباید کتمان علم بکنید خودش در سوره بقره آیه 188 میفرماید ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ام تراض منکم اموالتون رو به صورت ناحق و باطل نخورید خب اون طرف زحمتی کشیده می و الان یک اثر مادی بر او دارد که هر بار کتاب چاپ می شود و منافع او تعلق میگیره گیره حالا اگر بگه نه آقا اینو بدون اجازه من نمی شود و اگر این کار بکنه این اکل مال به باطل می شود اگر مشتری اجازه نگیره و بره کتاب و هم چاپ کنه که در حالت زحمت شد دیگری کشیده سودشون حال این آقا ببرد یا در سوره اعراف می هشتاد آیه 85 سوره اعراف ولا تبخسوا الناس اهم کم نگذارید و زایع نکنید اشیاء مردم را بخص کم گذاشتن کم قرار دادن این میگن بخص در رابطه با فرزندان حضرت یعقوب داشتیم که اینا برادرانشون به ثمن بخص فروختن یعنی برفرض که برادرش رو می‌خواستن که نمیتونستم بفروشن چورور بود نه عبد بعد به قیمت عادی می‌فروختن به قیمتی کمتر از قیمت واقعی فروختن به ثمن بخص فروختن قرآن نهی می‌کنه که حق ندارید نسبت به مردم بخص قائل بشوید این آیه جزء عام‌ترین آیات قرآن است هم حکمش کلی نیست هم حالات هم هم متعلقش کلی است الناس هم موردش کلی است همش عام است حب. لذا اگر کسی استفاده بکنه از آثار فکری دیگران بدون اینکه اجازه بگیره از اون کسایی که این محصول رو تولید کردن هم مصداق مال به باطل میشه هم مصداق تزییع حقوق مردم خواهد شد در نتیجه اینها دو تا موضوع متفاوتند که کتمان نکردن مسائل علمی اگرم تا کلی حرام باشد که اینطور نیست چون از این آیات و روایات فقط مسائل و معارف دین برمیاد که معارف دین نباید کتمان بشه در حالی که بحث مایه ما اعم میست این که چیزی بینیست چه بحث معارف دینی باشد چه غیر معارف دینی مثلا بحثای صنعتی تجاری هنری و امور دیگر اینکه ما حق مالکیت فکری رو داریم برای بعضی ها قرار میدیم این برای این است که جلوی سوء استفاده از تولیدات فکری گرفته بشه نه برای جلوی از استفاده صحیح یا نه به این معناست که این کتمان علم حساب بشه بر اینکه ما برای دانشمندانون حریم قائل بشیم که با تیب خاطر برند به آثار و مسرط امور منبه بپردازند این هیچ منافاتی با اینکه کتمان علم حرام است ندارد لذا چه اشکال داره بگیم تو باید آی که علمی در دستت و میدانی باید بروی تبلیغ کنی و بگویی از طرفی چون این اثر رو کسی به وجود آورده مالی به او بپردازی مقدمه است برای انتشار علم چطور خیلی از کارها به مانگن حج واجبه در این حال پول دادن به هواپیما و صاحب و هتل و رئیس کاروان می شود واجب که مقدمه است برای انجام واجب حج برمن واجبه در این حال بدون اجازه خلبان و دفتر شرکت حج و صاحب و هتل حق نداره شما صاحب هتل برید نمیشه به اینها بگه آقا شما جلو حج دارید می گیرید آقای خلبان میگه من یه اتنان زحمتی کشیدم شما رو از شهرت آوردم مکه مثلا یا مدینه آوردم آوردم جده یا مدینه و پول شو به من بدی بله اگه شما ندید نمیتونی برید و بر شما واجبه هم حج واجبه یک هم حق خلبان رو باد بدید سازمان هواپیمانی کشور یا دفتر شرکت های حج و زیارت یا صاحبان هتل شما به صاحب هتل نمیتونید آقا پول ما اینکه میخواییم بیام هج، هج بر ما واجبه، پس شما نباید به خاطر انجام مراسم هج و شعار دینی شرط بذارد و پول از ما بگیریم، ربطی به هم نداره شما پول هتل رو بده، هجت هم او رو انجام بده، در همین همینطور، نشر معارف دین، حالا بحث ما اهم از معارف دینه، برفض هم این معارف دین باشد، ای بی نداره. آقای کتابی نوشته معارف دینی در رو آمده است بر شمای مشتری هم و بر همه واجب است که معارف دین را نشر بدهند و شما پول آقای صاحب تعلیف را معلف را مصنف را ناشر را بده تبلیغ دین خودت را هم بکن پس بنابراین این دوتا با هم منافاتی ندارند. از طرف دیگه اگر ما نگاه بکنیم به حکمت این کار که می توانیم با قوانینی یک اطمینانی برای صاحبان اثر به وجود بیاوریم و جامعه امین رو بپذیرند که جعل کار دیگران سوء استفاده همین کپی رایت و کپی کردن و بهره از منافع مادی دیگران بدون اجازه سابشون ناپسند و یعنی اگر بکنی جرم حساب میشه و تبعات قانونی دارد و صاحبان اندیشه اگه بگیم جایگاه حقوقی دارند، یقیناً صاحبان اثر مخالفتی با گسترش افکارشون ندارند یکی از اهداف کسانی که اثر تو فکری تورید میکنن همینه که جامعه به سوی علم بره تعالی پیدا بکنه لذا اگر ما گفتیم حقوق مالکیت معنوی تایید بشه و مدق قبول باشه این به صلاح جامعه علمی کشور باعث رشد و علوم و آگاهی سطح جامعه میشه و اندیشمندانم غالبا ایده و تفکرات فکری که تولید میکنن این تنها منبع امرار و معاش اونهاست حتی اینا به اونه حکمت داره گفته میشه نه دلیل لذا اگر اینا بدونن که قانون مدافع حقوق مالی و منافع مادی اینهاست و در این باب امکان تزیه حقوق وجود نداره با دلگرمی بیشتری میرن دن دنبال خلق آثار علمی و تولیدات علمی رو بالا میبرن ابته این ها حکم حساب می شود. نه علت امده این است که این آیه قرآن و روایاتی که خونده شد و روایات و ادله دیگری که شبیه به این دلیلی بر بطلان و به مشروع, مشروع ندانستن و قبول نداشتن حقوق مالک فکری نیست الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین